تو این درس صوتی من توضیحاتی رو خواهم داد در باره اینکه چطور شما خودتون یا شاید دوستانتون این هیپنوتیزم و وضعیت هیپنوتیزمی رو تجربه کردید و این جورهای استفاده نادرست از هیپنوتیزم رو توی زندگیتون به خوبی دیدید. یک مثال میتونه این باشه که احتمالاً دیدید یه کسی میاد میگه که به فرض یه زورگیری اومد گوشیمو دزدید و رفت یا یه موتوری اومد زد به ماشینم آسیب به ماشینم زد آسیب خودم زد و بعدم در رفتند. و اون موقع معمولا اولین سوال شما اینه که خب چطور پلاکشو بر نداشتی چطور یاد اطراف پلاکشو برداری و جالبه که توی اون لحظه شما پاسختون اینه که نمیدونم چی شد انگار برای چند لحظه تو خودم نبودم مثلا حواسم نرفت به اینکه باید پلاکشو بردارم یا یه کار خیلی بدیهی که شاید بعد هر کسی میرسه رو انجام بدم و در واقع توی این شرایط اون سارق به صورت بجورایی تجربی میدونه که چطور شما رو شوکه کنه چطور شما رو واردی یه وضعیت هیبنوتیزمی کنه که دسترسیتون به منابع ذهنتون کم بشه خیلی از سارقی این کاری که میکنن دقیقا همینه ممکنه مثلا توی یه جای شلوغ با شما تنه بزنن یه یه که توجه شما کاملا جلب به اون میشه و در کنارش قایمکی کار دیگه ای بکنن یا ممکنه بخشی از بدن شما رو لمس کنن تمام تمرکز شما میره به اونجا و بعد از جیب دیگری در لباستون کیف پول یا هر چیز با ازش دیگه ای رو بردارن همطور که می‌بینید هیبنوتیز و هنر کنترل تمرکز یکی از علومیه که چه بسا سارقین حتی سارقینی که توی خیابون می‌بینید بر مدت‌هاست اون رو یه جورایی به صورت تجربی یاد گرفتن یعنی بعضن ممکنه شما رو با شوکی کردن وارد تونل واقعیت خاصی کنن ادراکات شما رو دستکاری کنن خطای دید برای شما ایجاد کنن ممکنه تمرکز و توجه شما روی نقطه خاصی روی موضوع خاصی جمع کنن و وقت حواستون از چیزهای دیگه پرت شد، دقیقاً از همون حوازپرتی شما استفاده کنند و در واقع یه جورای اون هدف که دارن رو به بار بشونن پس دقت کنید و خوب نگاه کنید که چقدر رایج بوده هیبنوتیزم خیلی اوقات شما تومه یکی از این سارقی میشید تومه یه شرایط خاصی میشید که دقیقا در واقع اون سارق اون زورگیر یه جورایی به شکل تجربی مهارت داشته در استفاده از هیبنوتیزم و حالا حالا تکنیکای بسیار مختلفی هست ما اشاره خواهیم کرد به تکنیکای مختلف که هم حتی با علم NLP یا برنامه‌ریزی عصبی کلامی اشتراکاتی داره و ممکن اصلا نکات روانشناسی باشه در اصل یا در روی خطای دیدها باشه در روی ساختار ذهن انسان باشه همه اینها رو وقتی به شما میگیم شما یه کمکی بهتون میشه در واقع اینه که نه کسی شما رو هیپنوتیزم میکنه که بعد سو استفاده کنه نمیدونم خودروتونو رو تونو ای هر چیز دیگه ای و هم به شما کمک میکنه افرادی که مدنظر دارید رو هیپنوتیزم کنید با اهداف نلوزوم هم مخرب با اهداف سازنده و مفید در راسته اون چیزی که میخواید